السه <سؤال> 6 قواعد 22 مهر 1400 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و اهل و بیت طاهرین المعصومین الله فی الارضین روحی و ارواح عالم نه له با تأکید بر خدای متعال و تأصل به پیامبر گرامی و اهل بیت اطهار علیهم السلام بحث رو آغاز می‌کنم. جلسه قبل بحثمون ببخشید در مورد فغهای بین قواعد اصولی و فقهی بود. در تفاوت قواعد اصولی و فقهی بودیم من یه چند تا تعبیر دیگر رو هم عرض میکنم در مورد این تفاوت یه کتاب سه داریم از جناب استاد سند که در مورد به عنوان بوحسون قواعد فرقیه از با این که دوستان آرام منابع منابعی رو که لازم هست آرام بیشتر آشنابشن این کتاب رو هم معرفی میکنم بعد با لیستی از قواهدشون رو هم شما خواهیم گفت مقرر این کتاب چند فرد رو به عنوان فروقی که در لابلای مواهز هست طبیعتا بزرگان نویس به این مسئله ترجه دارند هر کدوم از بزرگواران به نوعی مطرح میکنند اینجایشان این در مقدمه کتابشون چند تا, چند تا نظریه رو جنبندی کردن عنوان فرق بین قواعد فقهی و اصولی از منظرشان یک نظریه اینه قواعد اصولی یک نگاه استنباطی دارن و رابطه قواعد اصولی با نتیجه اون قواعد اصولی یک رابطه استنباطی است یک رابطه که ناظر به کشف و اثباته و طبق نظریه اول این قواعد اصولی ناظر به حکم اولی واقعی است چند از نظریه اول پس ناظر به این است که قواعد اصولی رو یه قواعد اکتشافی استنباطی بگیره ناظر به اون احکام حکم اولی واقعی اما قواعد فقهی رابطه دیگری دارند با قواعد با اون نتیجه شون. با اون محصولی که از قواعد فقهی به دست میان طبق نظریه میخواست قواعد فقهی رابطهی که با نتیجه فقهی دارن اینه که یک جنبه تطبیقی محض دارن قواعد فقهی اون اموری هستن اون قواعدی هستن که صرفا تطبیق میشن و در استدلال از طریق تطبیق اوناست که ما به نتیجه فقهی می رسیم، ولی قواعد اصولی یک رابطه استنباطی دارند طبق بیانشان اینطوری بايون ميفرم. النظريه اوله، اصولیت القاعده علاقتها مع نتيجه، علاقه استنباطي، به من الاستكشاف و الإثبات، اين قواعد اصولي. در واقع کاشفیت پیدا می کنند اثبات کننده خواهند بود نسبت اون نتیجهشون و و ناظرتون الالحکم الاولی الواقعی و معطوف و ناظر هستند به اون حکم اولی واقعی می خوان اون حکم اولی و واقعی رو کشف کنن. اما به خلاف القاعدت الفقهیه قواعد فقهی چه وضعیتی دارند چه رابطه با نتیجه شون دارند تفاوت داره فاین فا علاقتها من نتیجت الفقهیت استدلال، الاستدلال علاقت و تطبیق محض فقط یک رابطه تطبیقی دارند اون مقدمه میشه برای استنباط و کشف و اثبات اون نتیجه قواعد اصولی قواعد فقهی در مقام استدلال فقط تطبیق میشه بر مسادق خودش این نظریه اول نظریه دوم این که تکیش بر این مقوله است که قاعده اصولی یک سنخ حکم ویجهی داره حکمی که در اون شکل میگیر و ارائه میشه یک حکم فقهی نیست که با عمل مکنف ارتباط داشته باشه بلکه این کمککار مشتهده و عمل مشتهد رو بیان میکنه یک حکمی رو ارائه میده این قاعده اصولی خودش یک حکمی, یک حکمی رو که ما در اینجا شاهد هستیم حکم فقهی نیست که در خدمت مکلخ قرار بگیره و مکلف بخواه به اون حکم عمل کنه بلکه به درد مجتهد میخوره اما قاعده فقهی قائده است که در اون حکم با عمل مکلف ارتباط داره النظریه ثانیم ان القاعده اسولیه سنخ الحكم فی حال ليس حکما فقهی مرتبتا به عمل المكلف و انما به عمل المجتهد این حکمی که در قاعده اصولی ما به دست میاریم این سنخش یک حکم فقهی نیست که در خدمت مکلف قرار بگیره بلکه در خدمت خود مشتهده قاعد فقهی چطور؟ به خلاف القاعدت الفقهیم فا انال حکمفی ها مرتبتون به عمل مکلف این ناظر به عمل مکلف هست و تفاوت با اون داره این هم نظریه دوم نظریه سوم ناظر به این است که خروجی این دو حکم چنو نوع خروجی است آیا حکم ظاهری است یا حکم واقعی حکم و محمول در قاعده چیست در حقیقت بر اساس برداشت و نظریه سوم که در میان برخی از فقها دیده میشه این که قاعده اصولی یک حکم محمولی داره اون حکم محمول یک حکم ظاهری استطراقی است اما حکمی که در قاعده فقهی ما به دست میاریم حکم واقعی است اگر در ذهن مبارک دوستان باشه در نظری اول هم یه تعبیر حکم اولی واقعی بود اما به عنوان مقصود و هدف قاعده اصولی یعنی اونجا صحبتش این بود که قاعده اصولی به دنبال کشف حکم واقعی اولی است اون یه زاویه دیگه بود اینجا خود محمول قاعده رو میگه اونجا هدفش حکم اولی بود اینجا با اون هدف کار نداره با حکم محمول در قاعده قاعده گزاره است یک مبتدا خبری داره یک موضوع محمولی داره خود محمول اینجا حکمی که در قاعده اصولی در قضیه و گزاره اصولی آمده و قضیه و گزاره کلی اصولی آمده که اسمش شده قاعده خود این حکم حکم ظاهری استطراقی است استتراقی یعنی راهگوشاست دنبالت کشف طریق هم با قاعده فقهی خودش یه حکم اولیه است محمولش حکم اولیه است در واقع با اون نظری اول تنافی نداره اونجا گفت به دنبال کشف حکم اولیه خب اینجا قاعده اصولی رو نمیگه دنبال کشف حکم اولیه میگه خودش حکم ظاهریه محمولش محمول ظاهریه اشکال نداره این با اون نظری قابل جمع هست که این حکم ظاهریه به دنبال کشف اون حکم واقعیه اما خود قاعده اصولی چه حکمی رو چه محمولی رو در اون شکل قضیهش داره خودش حکم واقعیه خب این هم نظر سوم النظریت و ثالثه انالحکم والمحمول فی القاعدت اصولیت حکم ظاهری و استطراقی دینامو القاعده الفقیه سن خلق حکم فیها حکما واقعین اولین یعنی خود گزاره رو کار داره اونجا در نظر اول ناظر به اون هدف بود نظریه دومم میگفتش که چیه به چه کسی کار داره مکلفش کیه با موضوع محمول کار نداشت با مکلفش کار داشت اما در نگاه سوم و نظریه سوم با محمول کار داره نظ... پس ان الحكم والمحمول محمول القاعده الاصول في القاعده ظاهریون حكم ظاهري و استتراقي بينما سنخل الفقهيه حکم فی الحكم فيها حکما اما نظریه چهارم نظریه چهارم به دنبال مقایسه هیته و قلم رو به مربوطه هریک از این دو قاعده است در طبق بر اساس نظری چارم قاعده اصولی به یک باب فقهی اختصاص نداره اما قاعده فقهی گاهی و قات، به بعضی از ابواب فقهی ارتباط پیدا میکنه. بعضی جاها ممکنه نه حیطه وسیع بگیره مجموع مسائل وسیع رو بگیره بلکه بعضی از قواعد فقیه می ابواب مختلف فقهی رو پوشش بدن این نظریه در واقع می که قواعد اصولی یه سن مباحث که بین کل فقه رو میخواه بگه بحث ظاهر رو میخواه بگه توسط به ظواهر حجت از یا نه خب این به درد کل فقه میخوره در واقع اینجا این نظریه سوم یک م... تفاوت سوریست و الا اون مجموع قواعد فقهی که به درد کل فقه میخوره اون سوال سؤال به اونجا هم منتقلی میشه که قواعده اصولی که اختصاص به با بخواست نداره پس آیا شامل اون قواعد عام و فراگیر همه اوافقه هم میشه ممکنه کسی اینجوری بگه بگه اون قواعدی که مشتق برای کل فقه بیاریم چونکه برحال یه جاهایی یک نگاه اعتباری وجود داره ممکنه به اینجا برسه در مجموع نظریه سوم به قلمرو کار داره اگر نظریه اول به یک منظره میپرداخت رابطه قاعده با نتیجهش رو کار داشت نظریه دوم قاعده اصولی رو میخواست میگه که مکلفش کیه قاعده فقی مکلفش کیه نظریه سوم با محمولش کار داشت در نظریه چهارم با دایره قاعده کار داره النظریه رابع اینه که القایدت الوسیل لا تختسه بباب فقیه به حال من الاحوال در هیچ حالتی کار با باب خاص فقیه ندارد. اما القایدت فقیه فقط تختسه به بعض امسلطها، فی بعض امسلطها به بعض الابواب الفقیه. در برخی از قواعد فقهی ما می‌بینیم که به برخی از احباق فقهی فقط ارتباط داره هرچند مسئله و مسئله متفاوته و این اختلفت القاعدت الفقهی عن المسئله الفقهی قاعد فقهی یک چیزه مسئله فقهی و قوله خب و برخی از مسائل فقهی این اختزار رو ممکنه داشته باشه که با یک قاعده تناسب داشته باشه خب حالا این بحث هاشیهیه اصل نکته این بود که قواعد وصولی برای کل فقه قواعد فقهی همه جا اینجور نیست بستگی داره و این اختلفت القاعدت الفقهی عنه المسئلت من جهت عدم اختصاص القاعدت به مسئلت الفقهی واحده بل تعمل کسیر من المسائل الفقهی بل فی کسیر من القواعد الفقهی تعمل عبواب فقهی متعدده فضا ان بعض المسئل پس قواعد فقهی دو نوعه بعضیشون به بعضی از ابواب مرتبطن بعضیش به قواهد به ابواب متعددی مربوط هستند و فقط به برخی از مسائل ارتباط ندارن برخلاف قواهد اصولی که کلن به کل فقه ارتباط دارن نه به یه باب خواست به ابواب خواست اما قواهد فقهی تنوع دارند. این هم نظریه چهارم نظریه پنجم بحث رو میبره در مورد شبهات حکمی و شبهات موضوعی به بحث میذاره که گفته میشه که قواعد اصولی ناظر به شبهات حکمی هستند و در شبهات حکمی جاری میشن اما قواعد فقهی در شبهات موضوعی یعنی اون نکته که گفتیم تطبیق میشه یعنی چی؟ یعنی در یک مستقیم هک شما ما داریم سوال میکنیم سوال برانگیزه برای ما داریم اون قاعده رو تطبیق میکنیم موضوعش رو حکم اون موضوع رو به دست میاریم. نظریت الخامسه ان القایدت اصولاً شنها الجرایان ف شبهات الهکمیه بخلاف القایدت الفقیه ف شنها الجرایان ف شبهات الموضوعية. پس این پنج فرق که در اینجا ذکر شده نکته دیگه ای که گاهی قد حالا کمک میکنه اینجا بحث رو ما بفهمیم اینه که ببینید با زبان ساده بعضی از این موارد یک جنبه سوری داشتند و به صورت مسئله کار داشتند اون ریشه رو باید مشخص تر در نظر گرفت اونجایی که میگیم که ناظر به اون کشف حکمه به تعبیر دیگه به تعبیر مرحوم نائینی در طریق استنباط قرار میگیره قاعده اصولی قاعده اصولی در کبرا قرار میگیره در اینکه ما بخوایم تازه بریم سراغ مقدمات فقهی به یک نتیجه فقهی بخوایم برسیم قاعده اصولی یک مرتبه مقدمتره و مثل این که ما میگیم این ظاهر است و ظاهر حجت است خب به حکم فقهی رسیدیم نهنوز نه بعدم باید بریم در بر در واقع بگیم قواعد اصولی مبانی میتوانند باشند برای مسائل فقهی برای حل مسائل فقهی قواعد و پیشفرض هایی هستند برای اون موارد در واقع ما قوائدی داریم اون قواعد مجموعه گزاره هستند گزارهی که پیش فرض گرفته میشه در اثبات یک حکم شرعی حکم شرعی چه قائبده باشد چه مسئله باشد یک پیش فرض های اصولی دارد پیش فرض های اصولی که در کل فقه میتوانند جاری بشند و به استنباط حکم ای یا مجموع مسائلی و قاعده ای منجر بشن یعنی حتی ما برای اثبات قاعده فقی هم ناس به قواعده اصولی داریم اگر شما یک مقدمه و یک،, یک موضوع و یک محمولی دارید و اون موضوع چنان گسترده است که اون ای که با موضوع محمول و محمول نسبت تشکیل میشه و یک قضیه کلی رو تشکیل میده از سنخ قضایه فقهی سوال آیا اثبات اون و کشف اون نیازمند پیشورس ها و قواعد اصولی نیست؟ پاسخ میدیم چرا؟ بنابراین قواعد فقهی می توانند از سنخ مباحث فقهی تلقی بشند که خود اونها حکم شرعی رو بریان می کنند خب، حالا در اینجا در مقام اینکه شما بخواید بپردازید تکمیل بحث رو بحثای پیچیده هم در این موارد هست در برخی از مسادیق این قلط و قلط هایی می توانید شما سراغ بگیرید که اینها آیا فلان مثلا حکم اصولی است یا فقهی است اون دیگه خلاصه بحث های تفصیلی و در واقع درس خارجی رو اختزا داره که اون مسادیق تکلیفش معلوم بشه خب در لابلای کتاب در ابتدای کتاب قوائد می توانید بعضی از این موارد رو پیدا کنید یا در دل مباحث اصولی به تکمیل اینطور بحث ها بپردازید خب این نکته بسیار مهمی بود که ما آشنا بشیم اجمالان تفاوت‌های مربوط به خلاص تفاوت قاعده فقهی اصولی رو به دست بیاریم این نکته ظریفه که اگر قاعده فقهی خود به عنوان یک حکم فقهی تلقی بشه ده‌ها و صدها مصداق خواهد داشت که خود اونها حکم شرعی مصداقی خواهند بود اما قاعده اصولی این در واقع یک حکم فقهی نخواهد بود که مکلف بتواند اون رو پیگیر بشه در واقع همونطور که در فرق یکی از فرق دوم یا ثبوم ارز کردیم که ناظر به مکلفه این کمک و شاخصی عملی خوبی میکنه در طب دون نظریه دوم قاعده اصولی عمل مکلف رو تعیین نمیکنه کنه میتوانه مبنا باشه برای کشف در واقع احکام فقی من از دل این نکته یک استفاده فرعی هم بکنم و اون این که پس تعبیری که من به کار بردم قوائب به مسابه مبانی و پیش فرضهای اثبات احکام فرعی اما صارعی کلی و جزئیست خب این یه مقوله جدی است. پس تعبیری که من به کار می‌برم یک تعبیر جدیدیه. اینجا به مسائل مبانی و پیش‌فرض‌ها بگی مقداری الان در فضای کنون این تعبیر شاید گویاتر مبانی یعنی در علم دیگری اثبات می‌شوند و پیش‌فرض‌ها در علم دیگری اثبات می‌شوند. در کدام علم در علم اصول به عنوان علم پیشافق چنان که مبانی دیگری هم در علوم دیگه میتوانن خلاصه اثبات بشن چنان که مثلا مبانی, مبانی کلامی، مبانی اخلاقی، مبانی اجتماعی، مبانی موضوع شناسانه خب این مبانی به اندازه که در فقه به کار میبرند پیش فرض و مبنا حساب میشن مبنا در داخل اون علم ثابت نمیشه بنابراین خلاصه این مبانی در واقع قواعد اصولی به, به عنوان مبانی و فیش فرض و در علم اصول به عنوان علم پیشا فقه اثبات میشوند و در فقه در دانش فقه به کار گرفته می شوند بنابراین اگر ما گفتیم یک قاعده قاعده اصولیست منظوری نیست که ما فقط در اصول اونها رو به کار می بریم. نه در اصول اثبات میشن در دانش فقه به کار برده می شوند خب اینجا این استفاده من بکنم بحث نسبت در واقع قوائد اصولی با روش ما در داخل اشتهاد فقهی در مراحل مختلف اجتهاد فقهی نیازمند روش هایی هستیم روش استنباط را نمی توان از سنخ مبانی و قوائد اصولی دانست بلکه ما باید به این توجه بکنیم که روش یک مقوله است که در درون فقه استفاده میشه روش استنباد میتواند با تکیه بر مبانی و قوائد اصولی طراحی شود یعنی چی؟ یعنی این که برخی از مبانی اصولی و برخی از مبانی و قواعد اصولی خلاصه در تلقی های مختلف تفاوت دارند هر کسی مبنایی دارد و این مبانی می توانند که تفاوت داشته باشه در روش در روش سازی و اتخاذ روش تاثیر جدی می داشته باشه برای چی؟ برای کشف احکام الهی تفاوت ایجاد کنند. حالا برخی از مبانی چه اینگوونه نباشند بنا اما برخی از مبانی در واقع آفرینند روش, آفرینن، روش سازند و تاثیر دارند برخی از اونها ممکنه، در واقع دیدگاه های مختلف در مورد این قوائد اختزاعت روشی داشته باشه کسی که یک دیدگاهی رو قبول داره لزومن از همون روش دیگری استفاده نمیکنه. اما در مجموع شما قوائد به اگر هم بخواید بگید روش به معنای خیلی عامه در واقع قوائد جز به معنای عام نمیتوانند روش برای استنباد تلقی شوند مبنا یعنی چی یعنی اینکه شما در درون یک دانش یک شیوه یک مراحل یک فنونی به کار میبرید خب اون فنون یه چیز متفاوتیه مراحل یه چیز دیگه است شما بگید حجیت ظهور خب حالا میخواید ببینید این روایت این آیه شریفه چه ظهوری دارد برای کشف اون ظهور مراحلی رو تیمی کنید سوال هایی باید در مراحل مختلف پاسخ داده شوند تا به نتیجه فقهی برسید خود مراحل هر بحث مراحل موضوع شناسی مراحل کشف ظهور و سایر موارد, موارد، مراحل که برای تطبیق و اصول عملیه به کار میره اینا جزه است که بر اساس مبانی میتوانه شکل بگیر ولی متماهز از اونهاست مراحل استنباد بخشی از روش شناسی روش در واقع استنباده بلکه جزء اصلی بخش اساسی از روش استنباطه خب به کارگیری فنون فنون استنباط متمایز از قواعد اصولی است هر چند مقتنی بار اونها باید باشه در واقع یک فنون استنباط متکی بر قواعد و مبانی اصولی است اگر شما مبانی رو قبول نداشته باشید چه واسه بعضی فنون اصلا قابل قبول نباشه مثل چی؟ مثل تجمیع زنون تجمیع قرائن شما قرائن رو جمع میکنید به این قرائن شما رو به یک زنونی میرسانه یک قرینه به اندازه مثلا 10 درصد زن ناوری داره قرینه دوم هم 10 درصد وقتی که با هم جمع میشن تجمیح میشن اون نتیجه میشه 20 درصد قرائن تقریت بشن 80 درصد 90 درصد 95 درصد 97 درصد شما خلاصه میتوانید اعتماد بکنید اتمینان میتوانید پیدا کنید در برخی از مسادیق خب اینجا این بکارگیری هم بکارگیری و شک این فنون در واقع می توانه متکی بر قواعد و مبانی اصولی اصول فقه اصول باشه به طور نمونه تجمیع قرائن که به تجمیع در واقع ببخشی تجمیع قرائن که به تجمیع زنون و تجميع و تراکم زنون میانجام متکی بر چیه؟ در حجیتش، حجیت این مبتنی بر پذیرش یک گزارش، یک قضیه معتنابه در واقع یک قضیه اصولی است که به شما اجازه میده این کار رو بکنید. شما برای تجمیه قرائن مراحلی رو تیمی کنید میرید به قرائن تاریخی به قرائن درونمدنی قرائن برونمدنی تمسک می کنید اگر شما حجییتی برای زنون متراکم قائل نباشید اینجا بیفایده میشه. شه بنابراین حجی حج پذیرشه حجیت زنون متراکم است که در واقع قاعده و مبنای اصولی است اگر شما این رو پذیرفتید شما اون وقت میره دنبال تجمیع زنون متراکم و زورون تجمیش شده اگه قبول باشه و شما میرید از طرق مختلف به کشف این میپردازید پس یک بحثی ما داریم در مورد نسبت خلاصه قواعد اصولی با روش فقهی و روش استنباطی روش فقهی و روش استنباطی جاش کجاست؟ در درون فقه البته معمولاً در دروس رایج فقی در کتب رایج فقی به صورت پراکنده هست شما باید اونها رو به دست بیارید دستبندی کنید می توانید با دستبندی اونها نظم بخشی اونها با نظم بخشی می توان یک درسی خلاصه برای مراحل فنون و شگردهای خلاصه روشی می توان درس روش شناسی رو تهیه کرد و ارائه داد خلاصه آمادگی برای این کار یه بحث اما اینکه خودش آیا همون قواعد اصولیس به نظر می رسه که هر چند در عمل یک جاهای ممکن است در برخی موارد ممکنه ما با برخی از مباحث برخی از مباحث روشی در درون اصول فقه هم خلاصه مورد تعمال قرار بگیره ولی اصلی ترین خروجی خروجی فقه و قواعد اصولی چیست این که روش ارائه به شما نمیدن مبنا ارائه میدن خب این یک نکته بسیار مهم در فهم قواعد و این قواعد آیا روشند یا این که چی هستند؟ آیا اینها خود قواعد فقی هم خیر تمایز دارند پیش از اونا هستند بلکه قواعد اصولی نه تنها مقدمه برای استنبات احکام فرعی جزئی هستند بلکه مقدمه برای استنبات قواعد فقهی هم هستند بواعد فقهی هم جز احکام فرعی هستند دیگه احکام اصلی میشن احکام کلامی اعتقادی احکام فقهی احکام فرعی هن. چه از سنخ مباحث جزئی و مسائل جزئی باشن چه از سنخ مسائل کلی بنابراین نمیشه بحث رو محدود کرد به احکام جزئی بلکه احکام کلی که از سنخ قواعدن اونها هم نیازمند تکیه بر این قواعد هستن به عنوان مبانی پیشا فقه که بر مبانی دیگه هم میتونن تکیه بزنن بر مبانی زبان بر مبانی رجالی و هر بحث دیگه خب این هم یک وسئله بسیار مهم البته این رو هم عرض کنیم که بعداً ما نیاز داریم بحث در خلال مباحث اثبات و کشف قواعد فقهی می بایست از در واقع روش کشف قواعد هم باید مورد توجه قرار بگیره. سوال روش کشف قواعد آیا تفاوت اساسی داره با سایر روش ها خیر روش کشف قوائد فقی از درون روش شناسی در واقع استنباد استخراج میشه و از همون سنخ از درون اونه و از سنخ روش شناسی آم استنباد هرچن یک جاهایی که نگاهش معطوف به کشف قوائده در واقع شما لزوماً اون رو متمایز نخواهید دید ببینید سؤالی که دوستان تحت برمدن من اینطور فهمیدم که آیا چون پیام سریم یا میره روش کشف قباید چقدر مبتنیه نگاه کنید ما ارز کردیم که روش فقهی دو دست است هم در واقع احکام فرعی و هم احکام فرعی جزئی در استنباد هستند و روش استنباد و هم احکام کلی قاعده ای اح در واقع در درون فق دانش فق اهددار کشف احکام فرعی کلی و است. احکام فرعی کلی همان قواعد فقیه احکام فرعی جزئی از سنخ مسائل جزئی در فقه هن. خب ما عرض کردیم قبلا که جای قواعد کجاست قواعد مشترک و فراگیر باید ابتدای فقه بحث شوند درسته بعد قواعد اختصاصی هر باب فقهی باید کجا بحث بشن باید ابتدای همون باب بحث شود بحث بشن یعنی چی یعنی اثبات بشن در واقع چون که ما گفتیم فقه خواهی دو دسته از احکامه خب اول ما احکام کلی رو به دست میاریم احکام کلی که قاعده هستند خودش حکم اللهه و بعد چرا گفتیم باید اول هر بحث باید بحث بشن چون که قرار در در واقع به خاطر شأن شأن تطبیقی اونها بر مسائل خرد و جزئی فقهی می بایست زودتر سریعتر اثبات بشن و بعد و بعد در مقام بحث و اثبات مسائل فرعی به اونها هم تمسک شد یعنی هم اونها عدله فرعی دارن همچنان که ما به عدله جزئی و مصداقی تمسک میکنیم کنیم به تطبیق قواعد عام در هر مورد هم پرداخت از این رو جادار ما اول اونا رو اثبات کنیم من مثال قبلن لابلای بعضی بحثایی فقه و سیاست زدم خدمت دوستان مرحوم نراقی در عائده 54 وقتی که به بحث میپردازن ابتدا دو قاعده ولایت رو اثبات میکنن بعد در مسائل فقه ولایم میان اون قاعد دو قاعده رو تطبیق میکنن بعدش ادله خاص رو میپردازن به ادله خاص و جزئی یا مصداقی هم بعدن میپردازن پس جای بحث هست خب بنابراین الان اگر ما می‌خواهیم سوال اصلی ما چی بود بحث روش کشف قواعد فقهی بود عرض کردیم که قوا... خلاصه بحث تا اینجا قواعد فقهی از سنخ احکام فقهی هستند منتها از صنف احکام کلی نه احکام جزئی بنابراین باید خودش اثبات بشه بعد که اثبات شد در مسائل فرعی هم تطبیق خواهد شد در عرض و بلکه پیش از اثبات خلاصه عدله خاص و البته با اونها هم میتوان می نسبت سنجی هم بشه چنان که میتوان به نسبت سنجی عدله خاص با قوائد عام هم که آیا استثنان میخوره استثنان نمیخوره همسوان و همسوئی یا ناهمسوئی اونها رو خلاصه مورد بررسی قرار داد و نتیجه گیری کرد این یه مسئله مهمه ام خب در مجموع پس این قاعده فقهی هم تفاوتی با قواهد جزئی نداره وقتی که همسن بودند همسن بودن, بودن قواعد فقهی با قواعد در بابا مسائل خرد و جزئی در فقه مقتضی به روش استنباط روش عام در اینها هم هست روش عام استنباد چیست هر مراحل که داره اینجا هم به کار میره اما یک تفاوت داره با این تفاوت که قوائد عام مقتضی اثبات کلیتن کلی بودن حکم و موضوع است این تفاوت رو داره در واقع قوائدی که اون رو... قوائد روشی رو اون قوائد فقهی اصولی کار نداریم قوائد و زوابط کشف کلی بودن حکم در این موارد برجسته تره در اون موارد خاص ما میریم سراغ اثبات حکم خاص اما در قواعده کلی ما نیاز داریم به اینکه قواعد قواعده آم رو بررسی کنیم حالا انشاءالله بحث رو تکمیل خواهم کرد با یکی دو دقیقه استراحت خدمت شما خواهد بود